در در دل الله, الله و و تکمیل کلام دیروز یک نقطه را ارزه بکنم ما از کردیم که مثلا ابن الولید روی نسخه های به نسخه ای که محمد بن عیسا نقل کرده اشکال داشت خب احتمال دیروز عرض کردیم احتمال داشت این نسخه ای که زیادی بوده مرحوم ابن الورید اشکال داشته و اشکال هم برای ما الان واضح نیست خب طبعا این سوال پیش میاد که مرحوم محمد بن عیسا که سغس یونوس هم که از اجلا است این اشکال ابن الورید دیگه چیه این چند نفرم بعد از در سوال کرد. از که خدمتون ما دقیقا چون این کتب در اختیار ما نبوده نیست یعنی فعلا نیست بعد در خانه نمیتونیم خیلی راجع به این مطلب اظهار نظر جزمی بکنیم نه جزمی مثلا 80 درصد نمیتونیم اظهار نظر رو کنیم واضح نیست برای ما اون چه که تا حالا من در این مدت فرصیم تونستیم هنری رو خرج بدیم شناسایی مصدر و مقایسه مصادر اما پشت این لایه بعدی این که چی بوده و چرا این جور شده و چرا این کار پیش آمده اون هنوز برای ما روشن نیست این حالا این مقدار شما مطرح میکنیم ممکن یا باشه آن شما بحث میکنیم چون این مقداری که الان ما مفرح کردیم مفرح نشده این مقدار اول مفرح میکنیم تا بیدیم بعد چه بوده که حالا فرز کنیم اشکال بر یونس بوده بر محمد ابن ایسا بوده یا بر هیچ کدوم نبوده. و اصلا اشکال ابن ولید تعنی در خود یونس یا تعنی در محمد ابن عیسی نیست که دیروز عرض کردم عرض کردم چون این کتاب‌ها در اختیار ما نیست مبانی اینها در اختیار ما نیست الان از بعض از این کتب دو تا روایت مختلف نقل میشه مبنای صاحب اون کتاب در تعارض چه بوده اونم ما نداریم مشکل کار اینه ما چون می‌دونیم اصحاب ما مبانی مختلفی در تعارض داشتن عرض کردم که دارن مبانی مشهور قدم های از ائسامای کهش طرح بوده که یک روایت یک تایفر طرح میکردن حالا مثل شواذه کتابستان یه تایفره قبول میکردن مبنای دوم مثل ظاهر مرحوم کلینی که تأخیر قائل بوده مبنای سوم که مبنای شیخی که جمع قائل بوده از جمع محما امکان علما و مبنای چهارم هم مبنایی است که بعد از اعلام مشهور میشه که ترجیحه که الان تو حوزه ما بیشتر اون مسئله ترجیحه. اما این مسئله ترجیح مسئله همه اصحاب نیست توضیحاتشه وقتی کردم که فعلا جاش اینجا نیست ما الان مشکلی که داریم مثلا حسین سعید چه مبادا داشته در این مصنف خودش کروز اوورده. اون هنوز بر ما روشن نیست. چه مم فرستون گوی ما در بعضی از کتب معارض می بینیم احتمالی که خود ما می دیم. شاید اینا مبنایشون مثل شیخ مبنای جام بوده. اما اتوینا نداریم همونز واضح نیست برمون لذا این که آیا واقعا چه بوده آیا همینطور که ما دیروز احتمال رعی بوده احضر مفهوم بوده از احتمالات است که فعلا نمیتونیم تنقیین احتمال به یکی از این بزرگان قرد وارد بکنیم به یا به محمد ابن ایسا یا به خود مرحوم ابن الولی اونی که الان به ذهن من میاد از سرم الان تو ذهن من حضور داره اینه که احتمالی داریم این احتمال ما در این کتاب دیگه داریم احتمالی داریم که بعضی از این کتب مثلا کتاب یونس داره کتاب عمل یوم و... و لیله عمل یوم و لیله ظاهرا عبارتون اون چند نفر دارن عمل یوم مثل رساله عملیه که الان ما توضیح المسائل خب میدونید رساله توضیح المسائل در حدود و چهار سال پیش در قم نوشته شد اوکی تو ازو مسائل ندشتی مثلا آقایان که نمیشد دبیرم روزمانه شاه دبیر فرهنگی بود چون مرحوم آقای گرجیدی رساله شو اگه دیده باشین هر موجود موجوده من دیدم منتخبال مسائل اسمش بود من رساله خودشون نوشتهن آقای اسمش منتخبال مسائل بود این آوا خود زرق بود به اصطلاح روزی‌ها به اصطلاح فولکلور میگن ادبیات سعی کرد یک لغت خیلی عامیانه و مسائل رو قیل بعدم ارزه کرد با آیه ایشان جدیشان طبق نظر اهل خبره این مطابق از این با فتوه این جانب و عمل مجزیست این کیفیت توضیح مسائل پنجه خورده ای سال پیش تو قوم شد اما خب حالا میدهی شوان ده ها توضیح المسائل نوشته شده دقیق میکنم عمل یوم و لیله در اون زمان مثل توضیح مسائل زمان ما بود احتمالی که من میدم شاید مثلا کتاب یونوس در حقیقت به صورت حدیث صرف نبوده مخصه نسخه محمد بن ایسا این در حقیقت یک نوع توضیح المسائل هم بوده حالا اگر بخوایم تشویهش بکنیم به کتاب های عصمی خود شبیه کتاب منلای احضار الفقیه بوده احتمالا خود این منلای احضار تازگی اگر اگه یادتون باشیم محلم بخونیم که همین تازیه روادی در باب غنا داشت از هزار سجاده لاوازن تشریه جاریه یعنی بر تذکر که ذکرت کل جنه گفت یعنی به قرآت القرآن و زهد و مشابه داره این مرحوم صاحب وسائل <مع> یعنی رو این تتمه حدیث بهdjango سن نه این تتمه حدیث کلام صدوقه الان ما موارد داریم برای چشین این چون تازیه گذشت عرض کردم مواردی در باب سالات داریم در باب هشت داریم در جای دیگه داریم مثلا صاحب وسایل سه سطر به عنوان کلام صدوق نهاره کرده ادهه گفتم نه نیم سطر روایت با اون روایت نهاره کرده نیم سطر روایت بقیه روایت، کلام صدوق شد. به روایت یه احتمالی من دادم که نکنه این کتاب مثل کتاب یونوس در حقیقت یک نوع توضیح و مسائل بوده یعنی اضافه و بر روایت برای که جنبه عملی هم پیدا بکنه یه اضافاتی داشته پس در اینجا نه اشکال بیونوس وارده نه اشکال به محمد ابن ایسا وارده نه اشکال هم به ابن الولید وارده محمد ابن اضافات هم به عنوان روایت کتاب آورده؟ هم که میگه به کتاب به نسخه به نسخه و به چاپ محمد میرزا مراجعه کنه چون احتمالاً در چاپ های دیگه بقول مر در نسخه دیگه روایت دیگه این اضافات نبوده متن روایت بوده درست می‌گونه احتمالاً و قمی‌ها نه اینکه اشکال ولی خود صدوق اینطوره نه اینکه که اشکال داشته باشن بگیم چون یه مبنای داشتن قومی ها که کتاب حدیث باید مجرد باشه این وقتی من کردم اینجا این رو از کردم اینجای نمیگاه تو نرزنم یکی از اجایب کار کار مسلم صاحب مسلم صاحب کتاب صحیح صحیح مسلم معروف شاید تو کتاب اهل سنت تا اونجا که من بیدن برایش روز قدرش نزیر نایدم. ایشون اناوین باب رو تو خود کتاب نورده هاشیه نوشته باب و کذا برای این با حدیث خلط نشد الو خود بخواهی عناوین باب داره باب کذا کتاب بایدگیشون هم باب دارن مثل کافی ما این تعجیب آوره براتون در خود مسلم احادیث پشت سر همه عنوان بابشو تو هاشیه نوشته برای اینکه روایات از هم جدا نشد این مقدار سیاق روایات حفظ کرده این یک راهی بوده اینا قومی ها بلا اشکال روی این مسئله حساس بودن این جایی بحثش نیست حساسیت داشتن که به اصطلاح روایت غیر روایت مخلوط نشه احتمال این داره نه بخواه به یونوس نه به محمد بن ایسا و نه به ابن الولید هر سه کارشون درست هیچ مشکل ندارن یونوس رحمه الله هدفش این بوده که روایات رو بیاره با یه توضیحاتی که برای عمل مکلفین درست باشه بروچنش بشه عمل بشه. مثلا وقتی امام فرمود که انتقول فیعخی که ما سطرحالدارشون اضافه کرد که اگر مثلا کسی عجله داره در کاراشی که تند اخلاق تند داره این چون امر ظاهره همه میدینن این اشکال نداره این یه توضیحیست برای این که در مقابل کلام امام ایشون اضافه کرده باشه محمد ابن ایسا اضافه نکرد همین همی کتاب یونس رو برده. پس نه یونس مشکل داره نه محمد ابن ایسا مثلا چرا چون مثلا روایت جناب که اون شخصی که نقل کردیم ازش نهار میکنن عبدالرحمن ابن سیاب تو کتاب های دیگه هم بوده مثلا در کتاب هم محبوب هم بوده یعنی اینا میدونستن که این عبارت ما با ارترات خلق نمیشه. از کردم گاهی اوقات در قدما حتی استانه به علامت میگذاشتشته. مثلا می این کتاب می این کتاب رو بر خوند فقط گفتم مثلا یک سوم رواتش قابل قبول نیست. اون روای که قابل قبولش علم علیه علم علامت گذاشته. اصلا علامت میذایم این حدیث قابل قبول نیست. حالا ما اصلا دیگه اون علامت رو که نداریم که؟ ما الان مشکل اون چیه؟ چون اون کتاب نیست، چون اون نسخه نیست، چون اون علامات نیست، نمی‌دونم کار بکنیم. دقت می‌کنید؟ احتمال داره، مثل اینکه امروز وضعی هستن، با خط کجمی نيزان، با خط قرمز نيزان، خط سیاه نيزان، شاید اون مقدار که توضیحات یونس بوده متمایز بوده. ابن ولید هم اشکال نمی‌کنه رو محمد می‌گه، اگه اشکال کردو که صدو در فرقی ازش اون دقت بکنه. بی یونس اشقال نمیکنه اشکالش رو کتابه اشقالش هم به این معنا که این کتاب توش فتوا داره مواظب باشید این نثری ای که ما ابن احمد ابن آورده مجرد روایات یونس نیست توش فتوا هم داره از خودش هم اضافات داره پس بنابر این این مسئله رو که من دیروز عرض کردم تو ذهن شما در زیامت که این قضیه در یونس است یا در محمد ابن عیسی یا فرض کنید در مرحوم ابن الولیده در هیچ کدوم نیست در هیچ از این بزرگواران نیست توضیح روشن شد اونی که هست در حیرت بیان این مطلبه که مرحوم ابن الولید مخواد تذکر بده که در این نسخه غیر روایت هم داخل شده نه بقیه کتاب شاید درید داشته نمیدونم ما خبر نه الانم که من عرض میکنم اینه که دقت بکنید نه. الانم که من عرض میکنم احتمالاً که یقین داریم چون میگم این مباحث اصلا مطرح نشده که والا توضیحش بیاد در از مخاطب بگم که این راهی داره اون وقت ما خود ما ترجیحمون با نسخه عملی بود نسخه اصل محبوب حالا یکی از جهاتی که میشه اون نسخه رو با ترجیح بده مرحوم عیاشی در تفسیر خودش از عبد الله بن حماد انصاری ایشون توصیف سریع نداره نجاشی در شرحش گفته می شوخ اصحابنا طبعا عیاشی ازشون ایشون نقل نمی کنه مرسله لكن بعد نیست عبد الله و حماد به توضیحاتی راجع به عیاشی و تفسیرش داده شد دیگه تخرار نکن احتمال میدم مزیشون ایشون گرفته. لیکن در کتاب مرحوم عبدالله نحمد به این نقل ایاشی مثلا ایاشی در اون بر خراسان بوده آخر خود سمغن حالا اون ای که داشته از کتاب حماد انساری چون کتاب عبدالله نحمد در اختیار مرحوم سیرتاووس هم بوده از مستقیم حاضش نرم میکنه تو محاسبت تو نفس از کتاب عبدالله نحمد انساری نرم میکنه تا قرن هفتم هم این کتاب موجود بوده چی برسه به خراسان در قرن چهارم ابو علاقه چهارم علایه حاله در اینجا آمده عبدالله ابن سنان حالا یا واقعا عبدالله ابن سنانه یا احتمالا اشتباه شده ما عبدالرحمن ابن سیابه است سنان نیست سیابه است نصفی که به تا خوراستان احتمال داره اسمان هر جا بشه به هر حال قال ابو عبد الله و ان تقول في اخيك ما هو فيه مما قد ستره الله عليه فاما اذا قلت ما ليس فيه فذلك قول الله عز وجل فالاحتمال بهتان و اسما مبين این تایید کرد که اون و امر امر ظاهر توش نیست این مقرر و معید اون شد مقرر مقرر گفتم اشتباهه مقری است صلاحلسون سنت مقبی و و هر کزا ایید و شاهد شد بر اینکه اگر بگیم این همین عبدالله عبدالرحمن بن سیابه است حالا شما بگید شاید اون لیکی اشتباهه چون اون یکی در دو کتاب بسیار معتبره ای کتاب یونس ای کتاب حسن و اون اسم اشتباه نیست این چون خود عبدالرحمن حماد جزء اجلای اصحاب نیست و بعدم به در اختیار عیاشی و در خراسان احتمال و اشتباه توی است به هر حال تو این نسخه هم تو این روایت هم اینجا ما نداریم باز در کتاب ابو کوفی که ضعیفه در کتاب اخلاق خودش قال علی من قال فی اخیه المؤمن من ما فی من قد استتر به عن الناس قد خطاب او البته این استتر به عن الناس یعنی ما ستره الله نیست خودش پنهان کرده ما نظام احتمال دادیم که اون روایت ان منر باشه حتی در نسخه هم عبدالله بن حماد هم الغیبه و بود احتمال میدیم اونجا ان منر غیبه انتبو اونجا هم, انت اونجا هم نباشه این هم حدیث شماره 56 55 مرسله با قطع نظر از ارسالش بعد نیز عبدالله بن حماد تو اصلا توصیف صریح صریح نداره اما همین عبارت من شیخ اصحاب اونا توصیقه اینکه به کسی بگن شیخ خودش توصیقه اینه که آقای اشکال میکنن شیخ خوخت اجازه مسترزمه به ساقط نیست نه حرفشان سلیم نیست از کم شماره پنجه و این بحث شیخ خوخت اجازه که شیخ اجازه مستقنی هستن از توصیه ارز کردم سابقا مخوانا هم بحث کنم. اولین بار در شیعه توسط م گفتم یه خوزهایی گروز کردن برای اینکه اده زیاد رو پتی بکنه یکیش هم همینه این شیخ اجازه از و است این در کتاب مرحوم شهید ثانی آمده در به اصطلاح بحث درایت الحدیثش گواشاش پیشی اجازه تو طایفه برای خوی هم مخالفه است این نه شیخ خوخه هم ازی اول قاسم الكوفی ما توضیحاتش از کردیم شیخ اجازه واقعا سقه است این کار است. بله یه چیزی دیگه در اصحاب ما مشکل داره مثلا به مجرد که صدوقی از اینکه نفر نقل میکنن میکن شیخون این, این مشین روشند است اینکه میبهان داره اگر ثابت بشه که شیخون منشیوخ الاجازه کما اینکه اینجا شیخ نجاشی داره منشیوخ منشیوخ اصحابنا چون تعبیر به شیخ کرده توصیب از شماره پنجا و هفت تلقاط و راوندی فی دعواتی هر کو غذا حب اله الله من اشاتا رکت ركعه تطوعا خب این شواهد سنت داره چون تو انجام هم داره که حل وران ماهرم الله اعمال در ماه رمضان حدیث اون سلام خوب مستری حدیث شماره 58 مرحوم کلینی در کتاب کافی در همون اصول کافی حسین محمد عن مولد محمد حسین محمد از بزرگان قم و اشایره قم خاصه معلب نه محمد اهل بسره است. نیم این حالا چه رابطه با کوفه داشته ایشون از کوفه هم نرو میکنه همه هستم علی وشا من همین بحث اول آنگی که داشتن چند تا نسخه عرف کردیم محومه کلینی چند طریق داره به وشا یکیش هم اینه این طریق هم شکنه شده طریق بسری ها خیلی هم عجیبه یعنی از خوب میره بسره از بسره میره به کوفه خیلی همچین یک جوریه بله اون تره های اولش نه مثلا فقط میگنه از قوم میره به کوفه مستقیم جاست احمد اشعری یا توسط سهل بین زیاد مستقیم میره کوفه اینجا نه استادش قومیز میره به بصره از بصره میره کوفه معلم محمد بسره به هر حال معلوم محمد تضعیف تضعیفش هم ثابت نباشه توسیق نشده همست که مرحوم استاد به کامون زیارات سابقا توسیقش برگشت. عمل حسن النهلی وشا فوق العاده بزرگوار و جلغت از اجلا تارفه است اندارود ابن سرهان بنظرم به کس سین باشه ازدفتش سرهان در لوقت عرب اسم گرگه از کنی در میان عرب متعارف بود اسمای حیوانات اسد کل پلان رو بچه هاشون میگذاشن بعد اینکه ایجاد وحشت بکنن در دشمن به اسم اسد آمد مثلا اینطوری طوری سرهانم به گرگه مثل زهد یا زوید، زوید و میگوشه، بالا؟ اصفهان اصول کمتر میگوشه. <تصفيق> قال سهل تو ابو عبدالله عن الریف قال هو ان که فی و تابوشه علیه امرن قد ستره الله عليه لم یقم علیه فیه لم یوگم لم یوگم علیه فیه حد البته روا سند روشن نیست و روشن سندی نداره ابهام مصبری داره یعنی به خاطر که چون معلم نه محمد چون من عارفم چرا ما اگر مناقشه ای در سند میکنیم هدفمون اینه که تاثیر رو محض بكاره این بیکار چیزی بود که آیه متن ثابتی یا نه این الان روشن نیست مثلا ان تقول که فی دینه منظور خیبت معروز به دین باشه از دینه یا و خوک فدیم مثلا مخواسته بگیرم و هر حال انتبور لعخی که دینه مالم یفعل این خیلی عجیبه مالم یفعل که بختان قیبت نیست مگه چیزیگی باشه خرابی ما نمیتونم و تباسا علیه برث منه پخش کردن قد سطره الله علیه لم یقم این سطره الله هم به این معنا معنایه نه این حالا مثلا حالا این سطره الله که داره اهم تو خونهش انجام میده علمه نیست یا همونجا که من گفتم مردی در جسمش لیکن ظاهرا مرادش اون اولیه یعنی تو خونه امری انجام داده کارزشتی انجام داده سطره الله اصناده امر الالله یعنی هو سطره نفس مراد این باشه چرا؟ چون معیار زده برای سطره الله لمیغم علیه فیه حدون معیاره در این که این عیب مستوره برش اقامه حد نشده مثلا نصیب مرتکب zina شده اقامه حد نکرده اگر اقامه حد نکرده میشه مستور و انصافا این یک خیلی مشكله بگیم معیار در مسئولیت اقامه حد باشه اگر ولی کسی اقامه حد نشود دیگه این مستور میشه نه ممکن است کشف بشه اقامه حد نمیشه به هر حال چون سند حدیث خیلی روشن نیست ابهام داره اصلا اصولا حدیث عصر ما این شوری وقتیام توضیحات بیشتری اینجوری خیلی معیار نیست اصولا حدیث بحثه ما یه مقداری مشکل داره یک امتیازاتی داره یک بدیها هم داره یکی از بدی ها چون ما شیعه بحثا کم داشتیم مهندسین کم داشتیم خیلی احادیثش بررسی نشده تنقیح و بحث و فلان مثلا بحثایی که ما می‌کنیم این کلمه چی بوده فدین بوده دینی بوده دینی ای که ای این کارا کن... در کوفه زیاد بودن خود وشتا نهاره میکنه به محروم احمد اشعری که در همین مسجد تنها 600 نفر یا 700 نفر, 900 نفر شیخ چون اونجا تحبیر به شیخ داره ها نه مثلا بچه طلب از رکس و تصمه از شیخ کلها میغول حدثه این جفر محمد خیلی مهمه توی یک مسجد 900 نفر یا 600 چون نسخش مختلفه این قصد تو که غاب کشتی اصلش آمده یک کمی نسخش مختلفه 900 نفر یا 600 نفر اینجور میگفتن اونم هم همه اشیوخ خب انصافا این حالت در بصره نبود درک کرده؟ خب چی بگم اون بصره شیعه کمتر بودن، محدثین کمتر بودن، چه کار میشد خیلی این بررسی و این قلطو قلطو مقارنه ها کمتر اتفاق میافتاد؟ البته یه چیز دیگه هست، بصره چون کم بودن، تعارضش هم کمه، از این جه خوبه. احادیث بصره چند تعارض داره؟ چون زیاده بودن تاار هم زیاده حالا گفت حسش گفتی با ب گفته حموب در از این دو تا نقطه متقابل دارن این خیلی نکته متقابل همن در بثه حدیثشون چون کمن خیلی تنقیب و تصیبه و مقابله و اینا نشده یه مقداری هم یعنی مثلا ف که ما ده نفر در بسته داریم 7 8 تا 4 تاشون رقی فرساد از کذابین و وزایی رو از ناجوری دارن در خود بسته بیشتر نسبت به خودشون زیاده نسبت به از کمش ما این نسبت هم در کوفه نداریم نسبتونه عدد رو و بله تنوعی هم در بسته شده کمتره در کوفه بیشتره مقابله بیشتره بله تضاد در کوفه بیشتره هم تو احادیث ما تاارض کوفه تاارض پیش داده هم تو اجتماعی شما مثلا بگه این خانواده زراره این خانواده فلان این خط فلان این اختلاف خط و دعواها و این فیزر بن مختار دیگه من در مسئله داخل میشم مراد مسئله کوفه دیگه از این تو دینم شک بس که از احزاب با هم اختلاف دارن این هم اختلاف حدیثی با هم داشتن هم اختلاف مسلکی و مشربی و اجتماعی و این با اون بعد اینا تو بصره کمه چون افرادش کم بودن، اون کوفه‌رو اتفاقاً معروف چون افرادش کم بودن این دعواهای علمی و اینها توی بصره کمتر بود اما توی کوفه بیشتر بود. به هر حال این روایت‌ها الان قبولش مشکلیه، ازجوزه ابوجنصهان توصیل شده، سند حدیث به سندی به استثناء مؤلف محمد بقیه توصیل شدن، که مشکل داره، نسخه این نسخه ای که از وشانغله شده مشکل داره. حدیث شماره پنجاه و نو مرهوم کلینی ان محمد ابن یحیان ان احمد ابن محمد که در اینجا به طور طبیعی مرهوم عشریه که بسیار بزرگوار اباس ابن آمر بسیار بزرگوار ان عبان ان رجل لا نعلمه الا یحیل ازرق ما معلوماتون راجبه یحیل یحیبن... ازرق اسم شما یادم رفتید یادم نیست زیاد نیست اما ما یکی دوتا حدیث داریم که ایشون رو در عدل زراره آورده توی های طلاق اینها مثلا زینه ان زراره و محمد و مسلم و برید و یحیی ازره میم اجمالش دیدم بعض از آن رو که مثلا یحیل ضعیفه. انصافش اینه که احساس میکنیم یحیل ازره شخصیت اجتماعیش و شخصیت الویش بیش از اون مقداریست که یک بره من همیشه ارزم کنم بعضی هستن شخصیتشون بیش از اون مقداریست که ما از ما خبر داریم بگیشن این بیتاره یحیل نره. یحیل از و این کلمه لا نعلمه حالا چون دقیقا زبتشیم در نسخه از نعلمه لا بوده اگر لا نعلمه باشه احتمالا کسانی که کتاب نقل کردن اگر لا یعلمه باشه خود چون الان مخصوصا میگن این خطا روایات در وقتی که نوشته شده به خط نفتی بوده روشند اوام روشند نیست علایه حالا عبان احتیاط کرده و فکر, فکر میکنم یحیاب باشه قال قال علی صلوات الله علیه که مراد موسیقی جعفره به همین جهت لا نعلمهو لا یعلمهو کمی ابهام پیدا میکنه. همین دیگه داریم همین آخرا تازه ما هم علی گفتیم آره یعنی این دلاله نه بود مثلا فرض که احمد گفته باشه که احمد بگه لا نعلمه من فکر می‌کنم ابان از یحیی از نقل کرده همه اگه لا یعلمه او بود یعنی خود ابان لا یعلم او الا یحیی این که ماکان قال قال لی حسن صلو الله علیه و آله من ذک الرجل البته احتمالاً کتاب از کتاب عباس بن آمر باشه یا عبان هر دوشون شخصیت بزرگی هستن به لحاظ مستری خیلی خوبه آنو آخریش رجلین باشه اما مستریش خوبه منذکره رجلن منخلفی به ما هوفی مما عرفه و لم یختبه از کلم کلمی منخلفی در ادهی از روایات اهل سنت آمده لیکن اضافه نداره همین منخلفی همین تذکره جمع منخلفه امام این اضافه ده کردن، مم ما عرف هنداز، فرق من خلفی بودن کافی نیست. یک، اون شخص نباشه، حاضر نباشه. دو، مردم هم اون رو بدونند. این ریبد نیست. ما من, من دکره من خلفی، بیمهوفی، ممالای عرف هم ناس و قد اختابه. انشا فالن این تفسیر با اینکه از کن مشکل داره خیلی از ذبات قبلی تعریفش واضحتر و روشند تره یک منخلفی یعنی اگر شما عید به کسی رو جلو روش گفتیم ممکنه صدقی ایزا بکنه صدق اناوین دیگه بکنه پس در غیبت عقص شده غایب بودن شخص دو غایب بودن وعص اون صفت وان فیلی هم که بگید دقیقی تو روایت هر دو هر دو غیبت رو حساب کرده هم شخص غائب باشه هم اون صفتی رو که شما میگین فعلی رو که میگین غائب باشه غائب در اینجا به مالا یعرفه الناس انصافا ببین با اینکه ارشکرتون یحیی الازر اصلا درست نمی‌شدین یعنی گفته شده اما احساس ما اینه که این شخص وقتی من اون حدیث دیدم که ایشون مقارنه شده بزراره اینکه که بزراره مقارنه بشه برمشه خیلی بزرگوار بوده ما اون مقدار احاطه و احوالاتی ایشان نداریم حدیث شماره شست مرحوم صدوق در عمالی اگر کسی کتاب از این کامپیتر ها هست گفت که صوت و شیطان ها، این اگر این کتاب این رواته از عمالی نوشته صفحه من نشد در بیارم احمد ابن حارون به همین مقدار اکتفا کرده یا اسم داره؟ چرا کرده ایشان اگر وسائل بود وسائل غالبا تلخیص میکنه اسمو اینجا نمیدونم آیا جمال احادیث تلخیص کرده هست کتابه نوشته جلد دو نوشته این که چلو دو نوشته جلد دو نوشته جلد دو اصلا اصلا احادیث ما هستند همین محمد بن عبدالله در حال فعلا احمد ابن هارون رو نشناختیم این احمد ابن حارون البته من یک قاعده خدمتون رو اعرض وقتی که در اسما یک کسی مشهور باشه قالبا اسم رو تا اون میرسونن این یک برسا گفت که علمی یک بوده که مثلا الان تو زمان ما مراعات نمی کنم اون زمان رو بوده مثلا فرض کنید کسی با مثال جدش مثلا چیخ توسی بوده اسم مش تا جد میوردن دیگه نمیگفتن مثلا شیخ طوسی محمد حسن طوسیه دیگه اسم پدرش نمیوردن اسم این بود اگر یک اسم سه‌لاسی میوردن چون اون جده معروف بود دو باری میوردن اون چهارمی معروف بود اگر ثنایی میوردن دومی معروف بود این متوارف و روشن شد چی میخوام بگم مثلا اگر این فرض کنید مثلا نوه نوه یک آی شخصیتی میگه احمد خود مرحوم صدوق داره محمد ابن احمد ابن فلانه این و محمد ابن سنان میبره ها به محمد ابن سنان چار سیس یا 5 تا اسم بره گایه میگه محمد ابن احمد سنانی از این که گفته احمد ابن هارون اکتفا به پدر کرده اکتفا به پدر کرده احتمالا این هارون باید شخصیتی باشه قاعدش اینطوره. من کی بگم سوال بکنیم چون احتمال دم حذف کردم مثلا احمد بن فلان, فلان فلان تا بفهمیم اون کسی که بهش اکتفا کرده این نقصیف فنی رو متوجه شید در شناخت القاب این ظرافتی داره مثلا فرض کنید گفته حدثنا محمد بن عبدالله اکتفا کرده محمد بن عبدالله عبدالله رو که اکتفا کرده بعد مشهور باشه عبدالله الله اینطوره این عبدالله مشهور عبد همیاریه اما هارون الان من نمیدونم الان کی بوده از مشایخ قم بوده جای دیگه بوده ما در این رتبه که مثلا استاد شیخ صدوق نواسه پسرش مثلا استاد صدوق چه هارون نمیدون موسی یا تلا اکبری رو میشناسین اما فرزند به نام احمد برایشان نمیشناسین الان تو ذهن من هارون دیگری که بخوره که پسرش استاد صدوق باشه به ذهنم نمیاد اون که الان به ذهنم میاد اینه که پسر حارون ابن موسای تل اکبری باشه ما داریم یه پسر دیگه داره که رفیق نجاشیه در بغداد بوده احتمال داره که شیخ, شیخ صدق چون بغداد دو سفر آمده متقارب بوده سفرش بغداد دو سفر که بغداد آمده شاید پسر حارون موسای تل اکبری اما به نظر وقتی که ایشون بغداد آمده حارون زنده بود و خدا حارون موسای تل اکبری حالا این که قال حدثنا محمد ابن عبد الله البته این رضی الله عنه علامت توثیق نیست اینی که از شیعه است رضی الله عنه اینکه این از مشایخ شیعه ایشونه محمد بن عبد الله این پسر همیاریه و این پسر همیاری استاد مرحوم کلینی. در کتاب کلینی زیاد به محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله همیاری پسره و ذکر کردیم کتاب قرب اسناد مال همیاری پدره که این طریقات مبارک این این طریقیه که معروف است به همیاری که نوشته این طریقات مبارک مال پسر حال محمد بن عبدالله نه مال پدر انا ابي عبد بن جعفر بن جامعه و نسبش آورده عبد الله همیاری فوق العاده معروفه ان احمد بن محمد البرغی این هم خیلی مشکل نداره اون اولی روشن نبود انه حارون ابن جم انه صادق روایت بقیه از اصحاب مون صادق خیلی بعیله خیلی مشکله احمد... احمد ابن حارون فامی آمده نه اون نیست پس چرا؟ احمد ابن هارون فامی نیمشه اما احمد ابن هارون فامی فکر میکرم از سنی باشه از اللہ ها اندبال برش احمد ابن هارون احمد ابن هارون چرا؟ اون مجهول نمیشه. احمد نژاد من خیال میکردم سنی باشه. دوست جدیدی من قلمه اول تا گذاشتم. که. علیه حال ان احمد بن محمد البرقی دقت میکنیم می‌کنید. از هارون بن جه نقل بکنه خیلی تعجبه. روشن نیست این برای ما الان. روشن نیست ابهام داره اصولا بر احمد برقی از مشا... از کوفی ها نهاره کنه به اجیب به هر حال احتمالا خرابی نسخه، مال همه احمد نهارون فامی باشه به هر حال این رو ما الان در آثاری که از همیری پدر و پسر داریم که صحیحه الان نداریم اینجز آثار میراسای همیری دیگه تو میراسای همیری نه الان نداریم انصادق صلى الله عليه السلام محدیث حدیث مشکل داره قال اجازه جاهر الفاسقو بفسقه فلا حرمت له ولا غیبته ان شاء الله خواهد آمد این اصطلاح خودشون استثناء یکی از استثناءات اینه که کسی که فاسق معلن باشه غیبت نداره در کتاب قرب الاسناد که مولا هندیاری پدره و مشهورم هست انس بن محمد که این ابان بن محمد بجلیث فوق العاده سرس ان اب البختری ضعیفه این جعفران و محمد بن ابی اول این بختری با این که آدم ضعیفیه مullah هم بوده قاضی بوده دیگه قاضی اول مدینه بوده بعد قاضی بغداد شده قاضی بغداد خیلی مهمه چون تایه تخت بوده در حکم قاضی قاضی, قاضی قضا نبودم در خود ما قاضی, قاضی قضا و جعالان بوده اما هنرش این بوده که خوب جل می‌کرده علیه حال و گفته شده چون امام صادق مادرش گرفته بود یک کتابی سنیام نقد میکنه ما نقد نکردیم به هر حال با انواع غایق گفتش ده اکثر بریه این ابو, ابو بختری. آلا یهانه انجافر و مهمره هی گاله سلاساتون لیسلامو حرم ساها و هوا مبتذه مبتذه مازن. ولی امام الجائر ول فاسق المؤلن بالفیز این سلاساتون لیسلهم غیبه این اجمالاً ثابته. اما از امام نه اجمالا از کلمات حسن بسیله به پیمبارم نسبت داده شده نیست. اینجا آمده شماری شستدوخه. القطور راوندی فی لب و لبا انن نبی انهو قال سلطان جائر که امام جائر و فاسق مولن و صاحب بلعه از کردن به پیغمبر هم نسبت داشته که مسادر ما آمده توی میراسای ما توی میراسای سنیا آمده لیکن مال حسن بخریه کلام ما رسول الله اشتباه شد حدیث شماره شست و سه وفیه باز هم در مستدرک از فضل الله راوندی فی نوادری این نوادر فضلال راوندی همون قربو... چیزی کتاب اشعصیاتیست که ما داریم به اینه کتاب اشعصیاته توضیحاتش که را نهارز کردیم یکی از اجایب اینه که این تیکه یک کتاب توی کتاب اشعصیات نیامده خیلی عجیبه اینم خیلی غریبه یعنی واقعا و اش اصیات هم به احتمال بسیار بسیار قوی احتمال دادیم که به کتاب سکونی برگرده الان از سکونی هم ما اینو نداریم اینه هم از سکونی نداریم بعدش هم هر دو برمیگده به امیر المومنی اصلا این مضمون از امیر المومنی هم نداریم اینه میشه بشه مقایدات و مقایدات و شواهد و مقارنات و اصطلاح اهل سنت الان یه حاله معلوم میشه این نسخه اش از سیاد که در اختیار مرحوم سید فضل الله راوندی از سید ابو و بقول خودشون بسیار سید بزرگوه در راوندی های این دو نفر خیلی بزرگ هم قطر قطر البته قطراب این سید نیست شیخ این آقا سید, سید فضل الله راوندی میدرد دیگم ارز تا اونجا که من میدونم اولین کسیست که در علمان ما ازش تعبیر به امام راوندی. ایشون برد بزرگواری سلف ازون ایشون در این کتاب نواذه نه کله ان محمد بن اشعث همین صاحب کتاب اشعث یاد ان موسی موسی بن اسماعیل نبه موسی بن جعفر ان ابی اسماعیل اسماعیل پسر امام کاظم نه اسماعیل پسر امام صادق ان ابی نوشتن ابی موسی اشتباه نوشته افتاده ان موسى بن اسماعيل اینجوری باید باشه سند افتادگی داره ان آبایی سند کامله انا ابي صادق انا ابي الباقر تا انا علي قالقل رسول هم به ول امام الكذاب ان احسن ان لم رو بگم و متف اون بلمههات از جون زار میچال کسانی که حرفظ قبیح به زبانشون جاری میشه و خارج جمل جمعاعه از تاعنالااممتی از شاهر عله ها به صیفهه این خیلی عجیبه این بعید اینطور رو از باشه. چون خود اسماعیللی از کسسان بودن که خارج بوددن بر علمای بر خلافای بغداد و علیه اونا قیام کردند. چون کتاب جعفریاد در حکومت فاطمی ها و اسمایلی ها در مصر نوشته شده ارز کردم این کتاب در مصر تدوین شده و از های نادر مصری ماست از این یک متن هنوز خیلی شواهد داره خیلی مخصد اون دو آخریش و خارج انجماعه از طاعن و علا امتی از شاهر علیه ها به صیفه مخصوصا اگه در نظر بگیم که خیلی علوی ها قیام کردن زمان بنی عمیه زمان بنی عمیه کمتر زمان بنی عباس مؤزم قیام علوی ها در زمان بنی عباسه نه بنی عمیه حدیث شماره شست و چار الاوالی و فل حدیث لا غیبتل فاسقه او فی فاسقه که فوق الاده زیفه حدیث شماره شست و پنج قال علیه السلام من الگا جلبا ول حیا فلا غیبتله ان شاء خواهد آمد و مستدرک همین رو نقل کرده از لب اللباب راوندی البته اونی هم که در حزت رضا هست همونه به سر یعنی ابی ان یعنی ان الرضا لیست حدیث و تمام می‌خازیم نرسیم کنیم درسینو باش وارد ما حد چون بجای نمی‌رسه به هر